کتاب آه بازخانی مقتل حسین ابن علی علیه السلام. مردی گفت حج بگذاردم و از همسفران خیش جدا گشتم تنها روانه شدم و بیراه می رفتم. در بین راه نظرم به خیمه و خرگاهی افتاد بدان جانب شتافتم تا به نزدیکترین خیمه رسیدم پرسیدم این خیمه ها از کیست؟ گفتند از آن حسین گفتم پسر علی و فاطمه گفتند آری گفتم او خود در کدام خیمه است گفتند در فلان خیمه نزد او رفتم دیدم بر در خیمه تکیه داده است و نامه پیش روی اوست میخواند. سلام کردم و جواب داد گفتم یبنه رسول الله پدر و مادرم فدای تو چرا در این بیابان فرود آمدی که نه در آن گیاهی است برای چرای چار پایان و نه سنگری جان پناه گفت اینها مرا بترسانیدند و این نامه های اهل کوفه است و همونها مرا میکشند وقتی چنین کردند و هیچ حرمتی را فرو گذار نکردند مگر همه را بشکستند خداوند بر آنها کسی را گمارد که آنها را بکشد و زلیل گرداند چون حسین به حاجز رسید قیس ابن مسحر سیداوی را به کوفه روانه کرد و بعضی گویند برادر رضایی خود عبدالله ابن بکتر را و هنوز خبر مسلم ابن عقیل به او نرسیده بود و با آنها این نامه فرستاد بسم الله الرحمن الرحیم از حسین ابن علی به سوی برادرانش از مؤمنین و مسلمین سلام علیکم من برای شما سپاس میگویم خدایی را که معبودی نیست جز او اما بعد نامه مسلم ابن عقیل به من رسید و خبر داد مرا از نیکی رعی و اجتماع اشراف و اهل مشورت شما بریاری کردن و طلب حق ما از خدای عزوجل مسئلت میکنم با ما احسان فرماید و شما را اجر بزرگ دهد من روز سشنبه هشت روز گذشته از زلحجه روز ترویه از مکه بیرون شدم وقتی فرستاده من نزد شما رسد در کار خود شتاب کنید و جد نمایید که در همین روزها میرسم انشاالله. و ابن مسحر سیداوی با نامه حسین سوی کوفه روان شد چون به قادسیه نزدیک کوفه رسید حسین بن تمیم معمور عبید راه را بر او بگرفت تا تفتیش کند قیس نامه را بیرون آورد و بدرید حسین او را نزد عبید فرستاد چون در جلوی او بیستاد گفت تو کیستی؟ گفت مردیم از شیعان امیرالمؤمنین علی بن طالب و پسرش گفت چرا کتاب را بدریدی؟ گفت برای این تو ندانی آن چه نوشته است؟ گفت از جانب که بود و سوی که نوشته؟ گفت از جانب حسین ابن علی سوی جماعتی از مردم کوفه که نام ایشان را ندانم ابن زیاد خشمگین شد و گفت به خدا از من جدا نشوی تا نام آنان را با من بگویی یا بالای منبر روی و حسین ابن علی و پدرش و برادرش را لعن کنی وگر نه تو را پاره پاره کنم قیس گفت اما آن قوم نامشان را نگویم اما لعن را بکنم قیس مسحر به منبر بالا رفت و خدای را سپاس گفت و ستایش کرد و درود بر پیغمبر فرستاد و علی و حسن و حسین را فراوان به ستود و رحمت فرستاد و عبید الله ابن زیاد و پدرش و ستمگاران بنی اومیه را از اول تا آخر لعن و نفرین کرد آنگاه گفت ای ناس من فرستاده حسینم سوی شما و او را فلان موضع بگذاشتم اجابت او کنید ابن زیاد را خبر دادند که او چه گفت بفرمود او را از بالای قصر به زمین انداختند او را دست بسته به زمین افکندند استخوانهایش بشکست و هنوز رمگی مانده بود که مردی بیامد نامش عبدالملک بن امیر سر او ببرید گفتن چرا چنین کردی و نکوهش کردند. گفت خواستم اش کنم به فرمان او ب راهها را میان واقسه تا راه بسره و راه شام بسته و گرفته بودند. نمیگذاشتند کسی از آن خط بگذرد و بیرون رود یا به درون آید و حسین میآمد خبر از عراق نداشت تا بادی نشینان رادی. خبر بپرسید. گفتند: «ما هیچ نمیدانیم مگر اینکه نمیتوانیم توانیم دورون برویم یا بیرون آییم پس حسین، همچنان می آمد. حسین چون به خزیمیه فرود آمد یک شبانه روز آنجا بماند چون بامداد شد خواهرش زینب روی به دو کرد و گفت آیا به تو خبر دهم که دوش چه شنیدم؟ حسین گفت چه شنیدی گفت در نیمه های شب برای حاجتی بیرون رفتم شنیدم حاطفی می گفت ای چش بکوش از اشک پر شو کیست بعد از من بر این شهیدان بگرید جماعتی که مرگ آنها را میکشاند، چنان که خدا مقدر کرده است تا وعده او راست گردد حسین گفت ای خواهر هرچه چه خدای مقدر فرمود همان میشود. پس از آن حسین آمد تا نزدیکی آبی بالای زرود مردی فزاری گفت با زهیر ابن قین بجلی از مکه بیرون آمدی و در راه با حسین ابن علی با هم بودیم. بر ما هیچ چیز ناخوشتر نبود از اینکه در یک منزل با او فرود آییم. هر وقت حسین به راه میافتاد افتاد زهیر در جای می ماند. و هر وقت حسین فرود میآمد، زهر زهیر پیشتر روانه میشد. تا روزی در منزلی فرود آمدیم که چاره نداشتیم جز اینکه با هم در آنجا منزل کنیم. پس حسین در جانبی فرود آمد و ما در جانبی. نشسته بودیم و تعامی که داشتیم میخوردیم فرستاده حسین بیامد و سلام کرد و در آمد و گفت ای زهیر ابو عبدالله الحسین مراسوی تو فرستاد تا نزد او برمد هر یک از ما آنچه در دست داشت بینداخت مانند این که بر سر ما نشسته باشد دل هم همسر زهیر گفت من به زهیر گفتم سر پیغمبر سوی تو میفرستد نزد او نمیروی؟ سبحان الله برخیز و برو سخن او را بشنو و بازگرد زهیر برفت و دیری نگذشت شادان و خرم بازگشت فرمود تا چادر و باربونه او را برداشتند و سوی حسین بردند و مرا گفت به خاندان خیش ملحق شو که من نمیخواهم از ناحیه من به تو جز خوبی برسد و من قصد همراهی حسین کردم تا خیش را فدای او کنم و جان خود را سپر او سازم پس مال مرا به من داد و به یکی از پسرعموهایم سپرد تا مرا به اهلم برساند برخاستم و بگریستم وداع کردم با شوهر خود گفتم خدا یار و یاور تو باشد و خیر پیش تو آورد از تو همین خواهم که مرا روز قیامت نزد جد حسین یاد کنی آنگاه زهیر به اصحاب خود گفت هرکس کس دوست دارد با من آید وگرنه این آخر عهد من است با او و این قصه برای شما بگویم که ما در جنگ بلنجر بودیم خداوند فت نصیب ما فرمود و غنیمتها ها به چنگ آوردیم پس سلمان فارسی به ما گفت آیا شاد شدید از این فت که نصیب شما شد و غنیمتها ها که بدان رسیدید؟ گفتیم آری گفت وقتی سید جوانان عال محمد را دریابید به قطال با او بیشتر شاد شوید از این غنائم كه شما را رسید اما من شما را به خدا می سپارم عبدالله ابن سلیمان و منذر ابن مشمئل گفتند ما حج گذاردیم و همه همت ما آن بود که پس از حج در راه به حسین ملحق شویم تا ببینیم کار او به کجا می انجامن. پس ناگه ها را به شتاب می تا در زرود به او نزدیک کشتیم ناگه مردی از اهل کوفه پدیدار گشت چون حسین را دید از راه کناره گرفت حسین اندکی بیست گویا دیدار او می خواست. اما پشیمان شد او را بگذاشت و بگذشت. و ما هم بگذشتیم یکی از ما به دیگری گفت نزد آن مرد شویم و او را از خبر کوفه بپرسیم که از آن آگاه است. پس رفتیم تا به او رسیدیم و گفتیم السلام علیک گفت علیکم سلام. گفتیم از کدام قبیلهی گفت اسد گفتیم ما نیز اسدی هستیم نام تو چیست گفت بکربن فلان ما هم نامناسب گفتیم و پرسیدیم از خبر مردم در کوفه گفت از کوفه بیرون نیامدم مگر مسلم ابن عقیل و هانی ابن را کشته بودند و دیدم پای آنها را گرفته در بازار میکشیدند پس روی به حسین آوردیم و به دور رسیدیم و با هم میرفتیم تا شب در منزل سعلبیه فرود آمد ما نزدیک او شدیم و سلام کردیم جواب سلام داد. گفتیم ما خبری داریم اگر خواهی آشکارا بگوییم و اگر خواهی نهان سوی ما و سوی اصحاب خود نگریست و گفت من از اینها چیزی پنهان ندارم گفتیم آن سوار که دیشب رو به سوی ما می آمد دیدی؟ گفت آری خواستم از او چیزی پرسم گفتیم ما خبر آن دو را برای تو آوردیم و آن سؤال که خواستی کردی مردی است از قبیله ما صاحب رأی و راستگو و خردمند میگفت از کوفه بیرون نیامدم تا مسلم ابن عقیل و حنیه ابن را کشته بودند و دیدم پاهایشان را گرفته در بازار می‌کشیدند حسین گفت ان لله و انا الیه راجعون رحمت الله علیه ما و چند بار این کلام را تکرار کرد پس به او گفتیم تو را به خدا با اهل بیت از همین جای بازگرد که در کوفه یا یاور و شیعه نداری می ترسیم مردم کوفه به دشمنی تو برخیزند. حسین سوی اولاد عقیر نگریست و گفت رأی شما چیست که مسلم کشته شده است گفتند سوگند به خدا که باز نمیگردیم، مگر آنکه خون او را بخواهیم یا همان که او چشید ما نیز بچشیم پس حسین رو به جانب ما کرد و گفت زندگی بعد از اینها گوارا نیست دانستیم که عزم رفتن دارد گفتیم خدای تعالی تو را خیر پیش آورد گفت رحمکم الله یاران گفتند سوگند به خدا که تو چون مسلم ابن عقیل نیستی اگر به کوف روی مردم سوی تو بیشتر شتابند. حسین خاموش بماند آنگاه منتظر بود تا وقت سحر با غلامان و خادمان فرمود آب بیشتر برگیرند و کوچ کنند چون صبح شد مردی به نام ابوهره ازدی را دیدند آمد بر حسین سلام کرد و گفت یپنه رسول الله چه باعث شد که از حرم خدا و جدت بیرون آمدی؟ حسین گفت: وای بر تو ای ابا بنی امیه مال مرا گرفتند، صبر کردم. مرا ناسزا گفتند، صبر کردند خواستند خون مرا بریزند، بگریختم. قسم به خدا که این گروه ستمکار مرا میکشند و خدای تعالی بر آنها جامعه مذلت پوشاند. و شمشیری تیز بر سر آنها گمارد و مسلط کند بر آنها کسی را که زیر دست او زلیل تر باشد از قوم سبا که زنی مالک آنها شد و در مال و خون آنها حکمی میکرد مردی حسین ابن علی را در سعلبیه دید. نزد او آمد و سلام کرد. حسین گفت از کدام شهری؟ گفت از مردم کوفه. گفت قسم به خدا ای برادر کوفی، اگر در مدینه تو را دیده بودم اثر جبرئیل را در سرای خود وقت نزول وحی بر جدمان به تمنی نمی‌دم ای برادر کوفی آیا سرچشمه علم مردم پیش ما باشد و آنها بدانند و ما ندانی چنین نخواهد شد حسین رفت تا منزل زباله فرستاده محمد اشعس و عمر ابن سعد نیز برسید. و آن نامه که مسلم از ایشان خواسته بود بنویسند بیاورد که کار مسلم به کجا رسید و اهل کوفه بعد از بیعت او را رها کردند چون نامه بخواند و صحت خبر آشکار گردید قتل مسلم و بر او سخت ناگوار آمد و آن فرستاده قتل قیس ابن مسحر را هم بگفت گریه در گلوی حسین بپیچید و اشکش روان شد گفت اللهم اجعلنا ولی شیعتنا عند که منزلن بيننا و اجمع بیننا و بینهم فی مستقر رحمتک اینکه علا کل شیئن قدیر بار پروردگارا برای ما و برای شیعان ما در نزد خود جایگاه قرار ده و آنها را همراه ما در رحمت خودت مستقر فرما که تو بر هر چیز توانایی نوشته بیرون آورد و برای مردم بخواند. بسم الله الرحمن الرحیم اما بعد ما را خبری رسید جانسوز و دلخراش که مسلم ابن عقیل و هانی ابن و قیس ابن مسحر کشته شدند و شیعان ما را بیاور گذاشتند هر کس از شما خواهد بازگردد بر او اجی نیست و تعهدی ندارد مردم مردم پراکنده شدند و از راست و چپ راه بیابان گرفتند تنها همانها که از مدینه آمدند و اندکی از مردم دیگر که در راه بدانها پیوسته بودند بماندند این کار برای آن کرد که گروهی از اعراب میپنداشتند به شهری میروند کار آن راست شده و مردمش به فرمان او در آمده و نخواست با او همراه باشند مگر آنان که بدانند که چه در پیش دارند چون سهر شد حسین اصحاب را فرمود آب بسیار بردارید و راه افتاد تا از منزلگاه بتن العقبه بگذشت فرود آمد پیر مردی از بنی اکرمه را دید نامش امر ابن لوزان از حسین پرسید آهنگ کجا داری؟ حسین جواب داد کوفه پیرمرد مرد گفت تو را به خدا سوگند بازگرد که جز سر نیزه و دم شمشیر چیزی در پیش نداری این مردم که سوی تو فرستادند اگر رنج قطار را از تو کفایت کرده و کارها را آماده ساخته بودند نزدانها می رفتی سواب بود اما با این حال که عرض کردم رأی من این نیست که بدان جانب روی حسین گفت بنده خدا رأی سواب بر من پوشیده نیست ولیکن فرمان الهی چنان است که هیچ کس با او بر نیاید زحاک بن عبدالله مشرقی گفت با مالک ابن نظر عرهبی نزد حسین رفتیم و بر او سلام کردیم و بنشستیم جواب سلام ما بداد و مرحبا گفت و از سبب آمدن ما بپرسید گفتیم آمدیم بر تو سلام کنیم و برای تو از خدای تعالی عافیت طلبیم و عهدی کنیم خبر مردم را با تو بازگویم اینکه بر هر به تو متفق گشتند تا رأی خیش بینی حسین گفت خدا مرا بس است و او نیکو وکیلی است ما دلتنگی نمودیم از مردم و از روزگار و وداعش گفتیم و دعا کردیم گفت شما را چه باز می دارد از یاری من مالک ابن نصر گفت به و عیالمند من گفتم من هم وام دارم و ایال ولیکن اگر رخصت فرمایی تا کسی از یاران تو باقی باشد و توانم خدمتی مفید به تقدیم رسانم و دفع شرری کنم به یاری تو در مقاتلت بکوشم و اگر مقاتلی نماند بازگردم گفت رخصت دادم پس با او بودم علی ابن حسین گفت با حسین خارج شدیم و در هیچ منزل فرود نیامد و کوچ نکرد مگر از یهی ابن زکریا یا یاد کرد روزی گفت از پستی دنیا نزد خداست که سر را نزد زناکاری از زناکاران بنی اسرائیل هدیه بردن چون حسین ابن علی بر عقبه بطن بالا رفت اصحاب خود را گفت من خود را کشته بینم گفتند چگونه یا عبا عبدالله گفت خوابی دیدم گفتند چه بود گفت دیدم سگانی مرامی دریدند و در آن میانه سگی بود دورنگ. حسین رفت تا منزل شراف تا نیمه روز راه رفتند در آن هنگام یک تن از یاران تکبیر گفت حسین گفت الله اکبر برای چه تکبیر گفتی گفت درخت های خورما بینم. گروی از اصحاب گفتند به خدا سوگند که در اینجا ما هرگز نخل ندیده ایم حسین گفت چه می و آن چیست؟ گفتند گمان داریم گوش اسبان است حسین گفت من همچنین بینم اونگاه پرسید در این زمین پناهگاهی هست که آن را در پس پشت قرار دهیم و با این مردم از یک جانب روبرو شویم؟ گفتند آری در این جانب کوه زو زوحسم است از سوی چپ سیر فرمای که اگر زودتر بدان رسیدی مراد حاصل است